یکی از راه های گسستن و بریدن از سنت ها، از کتب مقدسه از آموده و مکاتب فلسفی یا تئوری های علمی این است که ما آنها را به صورت آموزه تلقی نکنیم بلکه فقط به صورت انگیزنده تلقی کنیم یعنی یعنی ما هر آموزهای را به انگیزنده به انگیزه بکاهیم یا تبدیل کنیم ما قرآن را به عنوان آموزه تلقی نکنیم ما مارکس را به عنوان آموزه تلقی نکنیم ما گات ها را به عنوان آموزه تلقی نکنیم ما مثنوی را شاهنامه را به عنوان آموزه تلقی نکنیم بلکه اینها ما را بینگیزند این, این تحول آموزه به انگیزنده یک شیوه گسستن و بریدن است و من کتاب بوچه اهریمن را برای همین فکر نوشتم یعنی در این کتاب این اندیشه در شکل خاصی طرح و بحث شده است من در اینجا چند پاری از این کتاب را که در این راستا نوشته شده است می خوانم فیلسوف انگیزنده است نه آموزگار هرچه یک فلسفه بیشتر بیشتر از آن که می آموزد می انگیزد فلسفیتر است و با آموزنده و آموز شدن محض دیگر فلسفه نیست این تمام این کتاب ها را می شود فلسفی کرد تمام این ادیان را سنت ها را داستان های را همه را می شود از اون آموزه آموز, آموز زندگیشان کاس و در گستره انگیزندگیشون آورد فیلسوف با شک ورزیدن، با انتقاد کردن نمیخواهد تنها این یا آن عقیده و فکر را رد کند بلکه میخواهد انسان را به آفرینش فکری بیانگیزاند این خارش رد کردن و غلبه کردن بر یک عقیده و فکر نیست که او را به شک ورزیدن و سرکشی کردن با می دارد بلکه این نشات از انگیز انگیزنده شدنش هست که در شکش، در انتقادش، در سرکشیش، در تنزش نشانه های خود را میابند. او میخواهد با یک شک پیکانی به عمق هستی ما بزند. نه آنکه که روش و قائد مداوم شک ورزی به انتقادگیری را به ما بیاموزد. تا ما به طور مداوم شک بورزیم و انتقاد کنیم و اسیان کنیم و از آنها لذت ببریم او حقیقت خود را به دیگران نمی آموزد و انتقال نمی دهد بلی که آنها را به حقیقت خودشون آبستن می کند شک او، تنز او، اسیان او، انتقاد او همه آبستن ساختن دیگران به حقیقت خودشان است. او حقیقت واحد خود را در دیگران حق نقش نمی کند یاد آوردن حقیقت چیزی جز حق کردن و نقش کردن حقیقت خود در دیگری نیست او حقیقت خود را به یاد کسی نمی آورد او دیگری را آبستن می کند تا حقیقت خودش را بزاید تا همه حقیقت‌های گوناگون خود تا همه حقیقت‌های گوناگون خودشان را بزایند. آموختن حقیقت به دیگری همیشه حکومت کردن بر دیگری. آموختن حقیقت بر دیگری آموختن حقیقت به دیگری همیشه حکومت کردن بر دیگری. است هر قدرتمندی نیاز به سازمان و روش آموزش حقیقت خود را دارد او با هر او با حقیقتش بایستی همه را نازا ساسد تا حکومت کند و کسی که نازا شد از انگیزه لذت برانگیزندگی میخواهد یعنی هیجان و ارتحاب میخواهد نه آفرینندگی اینها را جانشین آفرینندگی کند. هر قدرتمندی باید همه حقایق نوزاد را بکشد تا نبالند و روزی قدرت را از او نروایند آموختن حقیقت خود یعنی کشتن حقایق دیگران هر کسی که حقیقتی میپذیرد حقیقت خود را قربانی میکند خود را قربانی میکند عقل خود را قربانی میکند اصالت خود را قربانی میکند پاره دیگر پیکان انگیزه معرفت و اخلاق و دین و فکر ما معرفت و اخلاق و دین و فکر ما از وجود ما هستند که عمق ما را پوشانیدند و هر چیزی را از رسیدن به عمق ما باز می‌دارند و عمق ما این نقاب‌ها و پرده‌ها را برای پوشانیدن خود رازم دارد ما میپنداریم که ما فقط بدیها، ها، زشتی ها، نقص ها و سستی های خود را میپوشانیم و از نشان دادن آنها شرم داریم ولی ما همچنین شرم از نشان دادن ظمت و بزرگی و اصاله خود خود داریم ما همچنین شرم از نشاندان تخمه بودن خود خودزا بودن خود داریم ما شرم از خدا بودن خود داریم آدم وقتی خود را در شرم از خدا پنهان ساخت در تورات نه تنها برای آن بود که با دانستن خوب و بد بد خود را شناخت بد خود را یعنی از نافرمانی از خدا یا بی ارزش بودن و ناقص بودن وجود خود در برابر خدا یا از بدی خوش شرم داشت نه بلکه همون آدم پی به وجود معرفتی در خود برد که او را مشابه خدا ساخته بود او اون معرفت خداییش را از خدا پنهان شد او از او شرم از شباهت خود با خدا داشت ببینید این شرم را هیچگاه مورد بحث قرار نمیدن این شرم دوم اساس کار بود انسان هم از سوسی و نقص و پستی و زشتی خود شرم دارد ولی هم از نیرومندی و قدرت و عظمت و زیبایی خود و خدایی خود را بیشتر پنهان میسازد تا شیطانیت خود را و از خدا بودن خود بیشتر شرم میبرد که از شیطان بودن خود سستیهای او ظاهرتر و سطحیتر و یافتنیترند برای کشف خدایی یک انسان باید از پردههای شرم زخیمتر و تاریکتری گذشت بدیهای هر انسانی را دوتر میتوان کشف کرد که خوبیهایش را چشم بینش ما از پردههایی که خوبیها را اند ان به آسانی نمیگذرد که با چراغ دنبال انسان میگشت نمیدانست که خوبیها و قهرمانیها و عظمت های انسان یعنی خدا بودن انسان از پرده شرم چنان پوشیده شده اند و تاریک اند که با چراغ و با می میتوان فقط ضعف ها و سستی ها و بدی ها و نقص ها, نقص، نقص ها را کش کرد با چراغ و خورشید نمی توان خدایی او را کش کرد اونچه چه اصالت و فردیت و خودی خود ماست در اثر همون شخصیت اجتماعی ما در اثر همون افکار و عقاید و اخلاق ما پوشیده شدند با آنچه در اجتماع ارزش و اعتبار دارند پوشیده شدند اینها دیوارهای بسیار مقاوم و سخت و زخیم و زخیم هستند و عبور از آنها غیر ممکن است ولی انگیزه پیگامانی که از های تنگ و ناپیدایی که در این دیوارها هست یا در دیوارها میشکافت و مته میکند به این عمق تاریک ما میرسد و با رسیدن و آن و بسودن آن فرو میافتد و میشکند و خرد می شود و خدایی که آبستن شد خود را پنهانتر و تاریکتر تر می کند چون آنچه در ذهن دارد باید در آرامش و سکوت و خلوت و در تنهایی بپرورد شرم برای آنچه در ما خدایی است، پوشیدگی و تاریکی زهدان است. خدا کودکی است که در زهدان ماست. ما به خدا هست که آبستنیم. ما نباید شرم از توستی خود را با شرم از عظمت خود مشتور سازیم انسان دو شرم متضاد با هم دارد انسان هم از احریمن بودنش و بیشتر هم از خدا بودنش شرم دارد یک پاره دیگر از کتاب بوچه اهریم انگیزند سازی آموزهای حقیقت همه آموزه‌های حقیقت در آغاز به عنوان آموزه حقیقت در مردم یا در صحابه و هواریونشان نفوذ نکردند بلکه در ویژگی انگیزانندگیشان آنها را برانگیختند و تخمیر کردند پیدایش ناگاهانیشان بریدن ناگاهانشان از افکار و رسوم و عقاید پیشتر بساخی و پایداریشان در برابر همه مردم را در آغاز بیشتر انگیخته‌اند تا آنکه در محتویات حقیقتشون مطالعه و بررسی شده باشند در اینکه یک امکان تازه فکر یا دین مردم را تخمیر کردند در اینکه یک امکان تازه فکر یا دین بوده اند مردم را تخمیر کردند در اینکه یک امکان تازه فکر بوده اند مردم را به جنبش آوردن به هیچ وجه مسئله تدریس و تعمل و تمرین در میان نبوده است صحابه و هواریون حقیقت او را بررسی نمیکنند مقایسه نمیکنند، او خودش نیز هنر هنوز آموزش را در تمامیتش ندارد یا هنوز در تمامیتش عرضه نکرده است و خودش نه آن را نمیشناسد حتی همین ناتمامی آموزش همین قطعوار بودن آموزه که هنوز یک دایره بسته نشده است انگیزنده است نه آموزنده از این رو نیز هست که تا پایان عمرش نقطه گرانیگاه اون جنبش در خود او هست و نداره آموزش، چون آموزش در خودش همیشه تا پایان عمرش ناتمام میماند و در خود او سه همیشه تمام میشود این پیوست مداوم آموزه به آموزگار سبب میشود که آموزگار در واقع مهمتر از آموزه مهمتر از کتابش میماند کتاب و آموزه و فکرش جایگاه خودش را هیچگاه پس از مرگش نمیگیرد و این نقش را پیروان بعداً به طور آگاهانه نا... درک میکنن و اینکه زندگی نامه او سپس به آموزش اش می‌شود. میشود برای این است که آموزش بدون آموزگار توهی و نامفهوم و بی تأثیر می ولی همین زندگی نامه اش سیرت اش باز اثر تبدیل به آموزه میشود اون براینده انگیزاناندگیش را که در اصل داشته است میده گفته های باقی منده از عیسی را پس از گذشت برهی کوتاه با زندگیش آمیختن و اناجیل را نوشتن محمد با عمد کتابش را گاه به گاه قطعوار فقط در حالات انگیختگی که داشت که گاه گاه داشت میگو در واقع قرآن جمعآوری جمعوری اندیشههای پاره پاره است که افکاری را که محمد در زندگیش با آن انگیخته شده است ولو وحی نامید مینامید روی هم ریخته شده است نه یک کتاب به معنای واقعیش او, او او گمان میکرد که کتاب او محتوی تمام حقیقت است و خود کفاس ولی مسلمانان به زودی دریافتند که بدون سیره محمد و شأن نزول این قطعات آنها را نمیتوان فهمید ولی این انگیزنده بودن در آن پیدایش این اندیشه این برایند در, در زیر پوسته آموزهی که اون حرف میزد همیشه از بین می رف. آموزه را نمی شد از آموزگار جدا ساخت با آن که آموزگار می خواست مستقل از خود بسازد این انگیزنده بودن شخص در آموزهش نمی گنجید محمد انگیزنده تر از قرآنش بود مسیح انگیزنده تر از آموزه هایش بود بودا انگیزنده تر از افکارش بود سقراط انگیزنده تر از آموزهایش بود به حدی که آموزه هایش در برابر انگیزه هایش به کلی رنگ میباختند که، کسانی که به محتویات آموزه سقرات برای درک شخصیت سقرات پرداختن همه گمراه شدند. دکارت و کانت و هگل و نیچه و مارکس و تیرکگار تر از آموزههایشان هستند کانت با افکارش مکاتب مط... گوناگون فلسفی را برانگیخت هگل با افکارش مکاتب متضاد فلسفی را برانگیخت مشغول شدن به آموزههای آنها و عدم توجه به انگیزانندگی آنها نشناختن آنهاست. اوموجوها های آنها را نمیتوان در تنگنای آموزه نگاه داشت این که چه گفتن مهم است ولی اینکه با گفتهشان ما را به چه افکاری میانگیزند مهمتر است مسئله اساسی آن است که آموزه ها را چگونه میتوان تبدیل به انگیزه ها کرد چنان که افکار فلاسفه و یا بنیاد گذاران ادیان یا شوعرا را میتوان دوباره انگیزنده ساخت و از چارچوب آموزه بودنشان رهانی محتویات حقایقانها نیاز به رد و انکار کردن و انتقاد کردن و زشت ساختن ندارد آشنا شدن با نیروی انگیزانندگی آنهاست که محتویات حقیقتشان را فرعی و ای و نسبی می می‌سازد این امیدوارم در خواندن و تأمل کردن و دقیق شدن در این کتاب بوته‌های اهریمن با این شیوه گسستن و بریدن از گذشته و از سنت و از کتاب‌های مقدسه بیشتر آشنا